از امام ششم جعفر ابن محمد صادق در مقام تعریف از شما شیعان این گونه میفرماید امام ششم امام صادق می فرماید حقوق ما بر ما واجبتر و تر از حقوق ما برشیعید دیگر لطف و انایت و آقایی و بزرگواری را ببینید تا به چه حد و تا چه مرتبه امام شماها را مورد تمجید و ترهیب و تقریص قرار داده که حق شما را بر خودشون واجب تر می از حق خودشون بشون به بر محبت هر هرچه داریم از رسول گرامی و جانشینانه رسول اکرم داری دین ما مذهب ما اخلاق ما رویه اسلامی ما آشنا بودن و به معارف دینی احکام اسلامی به برکت احمه تاهرین سلامات الله علیه مجمعین در این که انایتیست و این که لطفیست این که است که امام صادق خرمایت حقوق شیعان ما بر ما واجب تر تا حقوق ما برشیعان و بعد خود حضرت تعلیلی می فرماید و علت که چرا حق شما برادران و خواهران دینی بر اعمه معصومین علیه السلام واجب تر تا حق که بر شما این گونه بیان می‌فرماید برای اینکه شیعیان ما برخورد می‌کنند در باره ما به یک نساوبت و دشواری ها و سختی ها جان میدهند مال میدهند زندان میروند شکنجه میشوند و در راه خدا و در راه اسلام و در راه ما یک کلمه اظهار این زجار نکرده و کنم. کنند فینا ما لان و سابوفی هم. اونها در راه دوستی ما به مسائبی میرسند که ما در باره و دوستانمون به اون مسائب برخوردار نمیشیم. دوستان ما هستند در راه دوستی ما در راه ولایت ما در راه عشق به ما ببین تا کجا ایستادی دارن و تا چهد ثابت قدم و تا برجا جا هست